در این لحظه پیش خدمت کدس که به همه جا سر میزد، جلوی تدی و نیکلسن ایستاد و پرسید صبحانه میخورن یا نه نیکلسن جوابی نداد تدی گفت خیر ممنونم و پیش خدمت عرشه از کنارشان رفت نیکلسن ناگهان و تا حدی به تندی گفت اگه دارت نمیخواد به بحث ادامه بدی کسی مجبورت نمیکنه. خاکستر سیگارش را تکاند و گفت میخواستم میخاستم بپرسم حقیقت داره که تو به همه اعضای ممتحنهای لایدکر والتون پیت لارسن ساموئلز و دیگران گفتی که کی کجا و چطور میمیرن حقیقت داره یا نه اگه دلت نمیخواد کسی مجبورت نمیکنه بحث کنی ولی چیزی که هست این شایعهای که تو بستون پیچیده تدی به تأکید گفت خیر حقیقت نداره من از مکان و زمانهایی اسپردم که باید خیلی مواظب باشن. و بعضی کارهایی رو با اونها در میان گذاشتم که انجام دادنش به صلاحشونه. اما از این حرفایی که میزنی خبر ندارم. من نگفتم که چیزهای اجتناب نپذیری وجود داره. دستمالش رو دوباره بیرون آورد و تویش فیلم کرد. نیکولسن منتظر نگاهش میکرد. اصلا چون این حرفی به پروفسور پیت نزدم. اولا اونجاز به آدمهایی نبود که مسخرگی در می آوردن و چرندیات از بم بپرسیدن. یعنی میخوام بگم که تنها چیزی که در اومدم به پروفسور پیت گفتن می که بعد از ماه ژانویه حق نداره به تدریس ادامه بده غیر از این چیزی بهش نگفتم پشت داد ای ساکت ماند و گفت بقیه استادها بودن که مجبورم کردم اون چرندیاتو سرهم کنم اونم وقتی که کار مصاحبه اون نوار تموم شده بود و دیگه دیگه وقت بود و اونها گرفته بودن نشسته بودن سیگار میکشیدن و گل کرده بود نیکولسن به تاکید گفت میخوام ببینم تو نبودی که در اومدی به والتون یا مثلا لارسن گفتی کی کجا و چطور با مرک رو, به رو میشه تدی محکم گفت خیر من نگفتم هیچ کدوم از این چرندیاتو رو من بهشون نگفتم اونا بودن که یه ریز حرفشو میزدن انگار پروفسور والتون بود که شروع کرد گفت که دلش می‌خواد بدونه کی میمیره چون در این صورت میدونه چه کارهایی رو باید بکنه تا بیشتر سود ببره و از این حرفا اون وقت دیگرون دنبال حرفشو گرفتن این شد که منم حرفهایی زدم. نیکولسن چیزی نگفت. تدی گفت: اما بهشون نگفتم که دقیقا کیمی میمیرن این شایه از اون دروخهای شاخ البته میتونستم بگم. اما میدونستم که غالباً دلشون نمیخواد بدونن. یعنی میخوام بگم که با اینکه مذهب و فلسفه و این چیزها تدریس میکنن، بازم از مرگ میترسن. تدی یک دقیقه خاموش نشست یا بهتر گفته شود، پشت داد. سپس گفت: خیلی مسخر است. وقتی آدم میخواد بمیره کافیه نخیو که به جونش بسته پاره کنه. خدایا هر کسی رو میبینی هزارها بار این کارو کرده. حالا چون به یادش نمیاد دلیل نمیشه که دست به چنین کاری نزده خیلی مسخر است. نییکرسن گفت: «امکان داره امکان داره. اما منطق در اینجا حکم میکنه که هرچند مسائل از نظر عقل تدید دوباره گفت. خیلی مسخره است فکرشو بکن. مثلا من پونزده دقیقه دیگه درس شنام شروع میشه بگیریم راه میافتادم میرفتم طرف استخر احتمالا آبی توی استخر نیست بگیریم روزیه که قراره آب استخر رو عوض کنن. یا یه همچین چیزی اتفاقی که ممکنه پیش بیاد اینه که احتمالا راه میفتم میرم لبه استخر تا مثلا نگاهی به تهش بندازم خواهرم احتمالا سر میرسه و مثلا مرا توش حل میده سرم میشکنه و فوری میمیرم تدی به نیکلسن نگاهی کرد و گفت اتفاق دیگه؟ خواهرم شیست سال شو جون تو جونش بکنی آدم به شو نیست و با من خیلی هم میونه نداره این کار شدنیه بله دیگه خب این پیشامت جنبه قمنگیزش انگیزش کجاست؟ یعنی میخوام بگم کجای این پیشامت هرساوره؟ من فقط کارایی کردم که باید میکردم همین غیر از اینه؟ نیکلسن با بیزاری گفت ممکن از نظر تو انگیز نباشه اما برای پدر و مادرت این پیش دردآوره. هیچ فکر اینو کردی؟ تدی گفت آره البته فکرشو کردم اما علتش اینه که مردم برای هر پیش آمدی اسمی کذاشتن و یه جور احساساتی هم براش درست کردن دستهایش را که دوباره زیر پاهایش برده بود بالا آورد و روی دسته صندلی گذاشت به نیکلسه نگاه کرد و پرسید تا اسفنو میگم. درنگ کرد تا نیرسن با سر تأکید کرد. سپس گفت: خب اگه اسم امشب خواب ببینه که سگش مرده شب خیلی خیلی بدی و میگذرونه چون بیا اندازه سگشو دوست داره اما اماصبح که چشو باز میکنه نگرانی نداره چون میفهمه که فقط خواب دیده. نییکرسن با سر اشاره کرد و پرسید: دقیقا چی میخوای بگی؟ میخوام بگم اگه سگش واقعا بمیره اصل مسئله فرقی نمیکنه چیزی که هست اون با خبر نمیشه. یعنی میخوام بگم فقط وقتی از رؤیا کمی زندگی باشه بیدار میشه که بمیره. نیکولسن که از نگاهش میشد خان توی دنیای دیگری است با دست راست پشت گردنش را آرام و شهوانی مالش داد. دست چپش که بیهرکد روی دسته صندلی بود و سیگار روشن نشده ای لای انگشتهایش دیده میشد زیر آفتاب درخشان سفید و تراشیده از سنگ به نظر میرسید. تدی ناگهان بلند شد و گفت. گمونم الان دیگه وقت رفتن باشه سپس از سر امتحان روی پایه پیش آمده ای صندلی خود رو به نیکلسن نشست پیراهنش را توی شلوارکش کرد و گفت خیال میکنم تا درس شنا یه دقیقه و نیم وقت داشته باشم باید یه راست برم پایین به عرشه سه برسم نیکلسن با کمی بیپروایی پرسید اجازه میدی بپرسم چرا به پروفسور پیت گفتی که اول سال دنبال تدریس او ول کنه من با باب پیت آشنام برای همین میپرسم تدی کمربند پوست سوسمارش را محکم کرد و گفت فقط برای اینکه تو خط مسائل روحی افتاده و همین الان چرندیاتی تدریس میکنه که اگه واقعا بخواد پیشرفت روحی داشته باشه به ضررش تموم میشه این چیزا براش تحریک کننده است حالا وقتشه که به جای انبار کردن ذهنش از چرندیات همه چیز از توی اون بریزه بیرون اگه درش بخواد میتونه توی همین زندگی از شعر خیلی چیزایی که تو اون سیب بوده آسوده بشه تو زمینه تفکر کسی به گردش نمیرسه. بلند شد و گفت بهتر رابی را بیافتم خوش ندارم دیر کنم نیکلسن نگاهش کرد و همچنان به او خیره ماند و برای آنکه بیشتر نگهش دارد دو پهلو گفت اگه به تو اختیار میدادن آموزش و پرورش رو زیر و رو کنی چیکار کار میکردی؟ اصلا به این موضوع فکر کردی؟ تدی گفت داره دیرم میشه؟ نیکلسن گفت فقط به یه سوال جواب بده آموزش و پرورش مورد علاقه منه. آخه کار من تدریسه. برای همین میپرسم. تدی گفت. ببین. مطمئن نیستم که چه کارهایی میکردم. اما چیزی که یقین دارم کنار میذاشتم نحوه شروع تحصیل بچه است. دستهایش را رو برهم تا کرد. کمی فکر کرد و گفت. فکر میکنم بچه ها رو همه دور هم جمع می کردم و راه تفکر رو بهشون یاد می سعی سر می کردم شناختن خودشون رو بهشون یاد بدم. نه اینکه بهشون یاد بدم چطور اسمشونو رو بنویسن و از اینجور چرند یاد. گمونم حتی پیش از این کار وادارشون میکردم از همه چیزهایی که پدر و مادراشون و آدمهای دیگه بهشون گفتن وجودشون رو خالی کنن. یعنی میخوام بگم حتی اگه پدر و مادراشون بهشون گفتن که فیل بزرگه میگفتم اینو هم از وجودشون بریزن بیرون. میگفتم فیل وقتی بزرگه که کنار چیز ای مثلا سگ یا زن قرار بگیره. سپس لحظه ای فکر کرد و گفت. حتی بهشون نمی گفتم که فیل خورتوم داره. اگه فیلی دم دست بود میآوردم بهشون نشون میدادم. میذاشتم قدم زنان کنار فیل برم. بدون اینکه از پیش چیزی از فیل بدونن درست همونطور که فیل چیزی از اونو نمیدونه. همین کار در مورد علف می کردم یه چیزایی دیگه حتی بهشون نمی گفتم که علف سبزه رنگ ها چیزهایی جزئی مش اسم نیستن. یعنی میگم اگه بهشون بگم اللف سبزه این کار سبب میشه که از پیش بدونن اللف چه شکلیه. این شیوه شماست. و نه شکل دیگه ای که احتمالا ممکنه درست باشه یا حتی خیلی بهتر نمیدونم من فقط وادارشون میکردم تا ذره آخر سیبی رو که پدر و مادرشون یا هرکس دیگه ای وادارشون کرده گاز بزنن بالا بیارن ترسی نداری که نسل کوچیکی آدم نادان بار بیاد؟ تدی گفت: چرا؟ اونها نادانتر از فیل که نیستن یا نادانتر از پرنده یا درخت به صرف اینکه چیزی این حالت داره و اون حالتون نداره نمیتونین اسمشون نادانی بذاریم. درسته تدی گفت: درسته از این گذشته اگه دلشون بخواد اون چرندیات رو یاد بگیرن اون همه اسم و رنگ و و کسی جلوشونو رو نمیگیره که بزرگتر شدن میرن یاد میگیرن قصد من اینه که از اول شیوه درست نگاه کردن به اشیا رو یاد بگیرن نه اونطور که همه سیبخورها خورها به اشیا نگاه میکنن منظور من اینه خودش رو به نیکلسن نزدیک در کرد دستش رو به طرف او دراز کرد و گفت الان باید برم راستش لذت بردم نیکورسنگ گفت فقط یه ثانیه دیگه بگی بشین هیچ وقت فکر کردی که وقتی بزرگ بشی دوست داری به چه کار پشویشی دست بزنی طب یا چیز دیگه ای مثل این به نظر من با این ذهنی که تو داری میشد خیلی عالی تدی بیان که بنشینت جواب داد یکی دو سال پیش یه بار به این موضوع فکر کردم با چند تا دکترم حرف زدم سرش رو تکان داد و گفت این کار خیلی چنگی به دل نمیزنه. دکترها خیلی سطحی به مسائل نگاه میکنن. همه این حواسشون جمع سلول و این چیزاست. اهه؟ به نظر تو ساختمان سلول هیچ اهمیتی نداره؟ تدی گفت: چرا البته داره. چیزی که هست اینها جوری از سلول حرف میزنن که انگار سلول هدف قاییه و انگار نه انگار که این سلولها مال آدمی هستن که بدنش از اونها ساخته شده. موهایش رو با یک دست از روی پیشانیش کنار زد و گفت: این منم که بدنمو رشد میدم، کسی دیگه این رو برای من نمیکنه پس باید از چگونگی رشد تنم با خبر باشم. دست کم اگه شده به طور ناخودآگاه چیزهایی بدونم. البته ممکنه دانشی که خداگا نسبت به رشد تنم در چند صد هزار سال پیش داشتم از دست داده باشم. اما این دانش هنوز در ذهن من وجود داره. چون روشن من به کارش گرفتم و برای برگرداندن این آگاهی تفکر زیاد و خالی کردن وجود لازمه. منظورم دانش آگاهانه است. که اگه کسی دلش بخواد میتونه بهش برسه به این شرط که آمادگیشو داشته باشه تری ناگهان دستش رو پایین آورد دست نیکلسن را رو از روی دسته صندلی بلند کرد یک بار صمیمانه تکان داد و گفت حافظ باید برم و این بار با چونان سرعتی را افتاد که نیکلسن نتوانست او را معتذر کند نیکلسن که دستهایش روی دسته صندلی و سیگار روشن نشده ای لای انگشت های دست چپش بود پس از رفتن تدی چند دقیقی بی حرکت نشست سرانجام دست راستش را بالا برد و به یقه پیراهنش گذاشت تا ببیند دکمش هنوز باز است یا نه سپس سیگارش را روشن کرد و باز خیلی آرام پشت داد سیگار را تا آخر کشید سپس ناگهان یک پایش را از روی لبه صندلی گذراند ته سیگار را له کرد بلند شد و کمی با عجله راه روی میان ردیف صندلی را پشت سر گذاشت. از پلکان جلوی کشتی به چاباکی به طرف عرشه گردشگاه پایین رفت. در آنجا با همان سرعت بی درنگ کند، راهش را به طرف عرشه اصلی ادامه داد. از عرشه الف گذشت، از عرشه ب گذشت، از عرشه پ گذشت و به عرشه ت پا گذاشت. پلکان جلوی کشتی در عرشه ت تمام می شد نیکلسن که ظاهرا راه را گم کرده بود، لحظه ایستاد. چشمش به آدمی افتاد که میتوانست او را راهنمایی کند در نیمه راه رو بیرون آشپزخانه یکی از پیش خدمت های کشتی نشسته بود و سیگار میکشید و روزنامه میخواند نیکولسن به طرف او از پلکان پایین رفت مشفرت کوتاهی با او کرد تشکر کرد سپس چند قدم دیگر به طرف جلوی کشتی برداشت و در فلزی سنگینی را باز کرد که رویش نوشته شده بود به طرف استخر. این در به پلکانی باز می که مفروش نبود. هنوز بیش از نیمی از پلکان را رو به پایین نرفته بود که جیغی کرکننده و ممتد که به روشنی صدای دختر کوچکی بود به گوشش رسید. صدا که انگار در میان چهار دیوار کاشی شده منعکس می با تنین خود در همه جا پیچید.